تا حدیث داریم در این ما یکیش این است که طلب المؤمنه بین اسبعین من اعصاب الرحمان دل لمؤمن بین دو گوش انگوشت از انگشت های حقه از انگشت های رحمان با طاجب صویدا اینجا مفصل بنده ارز کردم و گفتم که اون چه میلیان که در صویدا دل آدمی هست از عین هیچ جای دیگه نیست عالم کبیر اصلا آدمی است این عالم بیرون عالم صغیره برای اینکه اونچه از اسرار خلقت در وجود آدمی هست در هیچ کدوم این چیزا نیست. ضمناً به شما عرض بکنم که تا اون جایی که بشر تا الان دانشش اجازه داده تا امروز اون چه اطلاعات هست این است که ما هیچ ساختی، هیچ صنعتی، هیچ ساخته ای رو دقیق‌تر و پیچیده‌تر و عجیب و غریب‌تر از مغز بشر در تمام جهان آفرینش تشخیص نداده المرمدیت بنابراین تا اونجایی که دانش ما اجازه میده من نمیدونم شاید یه روزی این برسه و ببینیم که این موضوعاتی اصلا هزار بار از ما پیش رفتم چه بده نمیشه گفت که که نمینه ولی تا اونجایی که ما اطلاع داریم همین طوره دلم امارس کردم که در حقیقت دل که مرکز تفکر و تصفر و اینا که نبوده مرکز عواطف خیال میکردن و به هر حال میگفتن دل میگه به غیر از دل من که از ازل تا به عبد آشغ بود کس دیگری رو ندیدیم که در این کار بماند اینجا خارج دل شخص خودشون نمیکه دل انسان ممیگه. دل من این من یعنی نوع انسان برای اون اون تنها جایی است که بر طبق این روایت هایی که اهل تصوف این تنها جایی است که میتونه خدا در اون جای سعی انایتی بیاد ترس. که دل من که از ازل تا به عابد شیخ رفت، کم کم قراصونی شده عاشق مره، همینه عاشق رفت نه یعنی عاشق شد جوان که است که در کار ما از صدای صدا با فتحه از صدا یه سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دبار به برای معنی کردن این شعر اول و از گنبد رو گنبد این افلاک رو تشبیه کرده به گنبدی که گردنده است این مال حافظم نیست قبل از حافظ بسیار شوهرها همین کردند. کردن و از جمله مثلا نظامی میگه که گمبد گردندز روی قیاس هست به نیکیگو بدی حقشناس دو مثلا رسال نظامی هست پیش از ما حتما گفتن حال تشبیه افلاد به گمبد خیلی قدیم است. ولی ما کجاییم؟ ما زیر گمبدیم یعنی ما روی زمینیم و این گمبد افلاد مافوق ما هست اگر یه وقت رفته باشین در گنبدی زیر گنبدی ایستاده باشین و صدا کرده باشین اگر این گنبد بیش از 17 متر ارتفاع داشته باشیم مثلا 18 20 متر قایش باشه صدا بر علت این که کمتر از این نمیشه این است که صوت در ثانیه 340 متر میره بنده الان که حرف می این هوا موج برمیداره مثل سنگی که تو آب بندازیم که موج برمیداره این موج میره همجون میره وقتی خورد به اون مانه چون طرف و باز دوباره میره رو همجون مخلوط میشه با هم بعد اگر نباشه سی سل چهل متر میره حالا گفتند که اثر محسوسات یک دهم ثانیه در حس در چشم روش و همسال اینا میمونه به یعنی که دیدیم قالبان که آتیش وقتی میگردونن به نظر یه حلقه قرمز میاد چرا؟ برای اینکه این هر دوری که این آتیش گردون میزنه زودتر از یک ده ثانیه است بنابراین این تصویر همجور به صورت حلقه میمونه در چشم آدم جوش همینطور تا یک ده همه ثان بنابراین اگر این برگشت صبح و از لازه یک دهامه ثانیه برگرده با همون اولی خاتیم شد مثل الان الان این صدای بنده قویی تر است از وقتی که توی فضایت باز حرف بزنم دلیلش این است که میره و میخوره به در دیوار بر میگرده با شما این هم صدا رو هم صدا رو انعقاط با هم میشنه ولی اگر بیش از هیفده همه باشه مثلا هیجده همه باشه 18 متر میره، 18 متر هم برمیگرده این چه 36 متر تا 34 مترش اثر صدا گوش هست وقتی که گذشت، اون صدا به صورت صدای دوپم میاد این اصل حضیه است. که اگر در فاصله بیش از 17 متر باشه برگشت موج صدا بیشتر از یک دهم ثانیه طور میکشه و در رنچه به صورت صدای دیگری، صدای دوپمی به گوش آدم میرسه این اینه اون کاری که در همه گمبدا و اینا می‌کنن و من یکی از عجایبی که دیدم اینو براتون بگم یه مسجدی ساختن در کراچی و مسجدیست که سقف نسبتاً کوتاهی داره ولی سقفش گمبدای شکل با انحنای خیلی کم انحنای خیلی کم، سقف نسبتاً کوترا پای دیوارش که وای مثلاً یک کمی از قد آدمی کمی بالاتر اون بسات هم که انهناه مثل مثلاً سه برا منبر رو در جای گذاشتن تا آخون که میره بالا منبر حرف میزنه تمام کسانی که در این مسجدن، خیلی هم مسجد است تمام صدا یک نواخت به گوشت رو میرسه و احتیاج گلندگو هم نداره دلیلش این است که محاسبه این اکاس صوف از علمی هست آکوستیک لابد میدونه که از شعبه های فیزیک آکوستیک علم مربوط و استدا و این انظر آکوستیک اینو محاسباتی کردن، که این صدا یکنواخت در سر برپورده متوالید و جاه مختلف نواخت به همه جای این مسجد میرسید. و هر جهت، صدا، انعقاس صداست. مولوی میگه که این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. فارسی صدا پجباک، پجباک واک، یعنی صدا باز همین است کلمه واژه به معنی لغن واژه هم از همین کلمه واک رو در زبانشناسی الان جز اصطلاحات به کار بردن و به کار میبرن و به صورت اصطلاح علمی اینجا استفاده میشه تعریف خواست هم که مربوط بزرمون شد پش واک یعنی انعکاس صدا و عربی صدا اون چه میمونه در زیر گمبت صدای ما نیست، این اکاست اونیست، بنابراین چه رو باید اینطور خوند؟ از صدای سخن عشق ندیدم پشتر یادگاری که در این گمبت دفعار بماند او یا مسجد شای اسماحان، میسیم که وضعش دوریست که وقتی زیرش دیر گمبتش مرکز حرف میدن سه چهار دفعه این این اکا صدا و میشه و اشاره حافظ به همین چیز است. از صدای اینم که روشن شد. دشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس. اینجا باید به عرصان برسونم که نرگس انواع احسان داره متاسفانه و انده نرگست شناسیم اصلا خوب نیست و باید روزو کنم به کتاب های مفصل یا که الان جا نیست چندین نوع نرگس یکیش اسمش نرگس شهلاس یکی اسمش نرگس مسکینه و انواع اسام نرگست های دیگر اون نرگسی که به چشم تشبیه میکنن، وسطش سیاه اون پیاله وسط نرگز اگه زرد باشه که شباهتی به چشم نداره یه نوع نرگس هست که بهش میگن نرگس شهلا اون نرگس شهلا وسطش سیاهه بنابارین تشبیه میشه به چشم نرگستی بله حالا من دقیقاً ارز کردن اطلاعات رو بنده می‌سید باقی سایر مساولی که می‌گه همه نمکشی دست می‌بخشید گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگز، چشم معشوق رو به بیماری توصیف کردن چیز میگه که حاطف اسمانی یکی از مداوای دو بیمار فرو طبی چشم بیمار کسی و دل بیمار کسی چشم بیمار معشوق و دل بیمار عاشق میگه نرگست بیمار شد برای اینکه مثل چشم تو بشه او که نشد ولی در اون حال بیماری باقی موند به تماشاگه ظلفش دل حافظ روزی شد رفت که باز آیتو جاوید گرفتار دار یعنی علالعبد چب باق اگر سوال چیزی هست بر با این باق بفرمین بفرمین من نمیدونم چه اینش ولی بر جماع اغلطو چنان با با با صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا بر در و دیوار بماند میدونید که نقش چین رو بر در و دیوار میکردن میگه این خیلی مسئله نقاشی چین خیلی خیلی مطرح بوده حتی شیخ عطار در در منطقه تیرش میگه یه پر سیمور گفتاد در چین که این همه گار در چین حدید آمد و به هر حال صورت چین و نقش چین و نقاشان چین و اینا فعیلیه، یکی میگه که سعدی میگه که فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند که چی با باشه میدوند این مرد را بود که پیرامون خرگاهش بدوزن یعنی اینو به صورت کتیبه اون پای سراپرده او اینو نقش با دوپا سوزن نقش با سوزن نقش بکنن این بیت رو فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزن یعنی درست ده. در هر حال نقش چین خیلی مفصل بعد قصه ای داره در باب خیلی قصه‌ای زیبایی همه هست که البته قبل مزن. سابقه میلیاتور چین رو نمی چرا؟ اصلا میلیاتور از چین آمده بله. بله، بله، بله از چین آمده بله، بله، بله ما اصلا از قرن هفته همه اشتون نقش نقاشی نداریم در کتاب ها و چیزه همون نداریم نیچی و مال مکتب ایس مکتب هراهات و بعد از مغال اصلا این پشتود شد و آماده برای اینکه میدونیم که نقاشی اصلا هرام بخصوص. جاندار کشیدن، حیبان و انسان، به کلی حرام ارز کنم که یه قصه‌ای دارد که مولانا گرفته، خودش چیز کرده، البته از گذشتگان به نظرم بر قضالی هم هست، میگه که نقاشان چین و نقاشان روم با هم مسابقه میخواستن بذارن اونا گفتن ما بیتریم، اونا گفتن ما بیتریم گفتن خیلی خوب میان، دوتا اتاق میدیم، به شما دوتا و شروع کنیم نقاشای چین رفتن و رنگ آوردن و وساط آوردن و خیلی مفصل و نشستن و مشکول شدن و ادهی و اده کار و اینا رونیا میپرده انداختن در اتاقشون و هم مشکول شدن منتها ها کارشون به هم فرقشون ما هیچ مواد و اینا نخواستن فقط شروع کردن به مهرزدن دیوار و سیغلی کردن دیوارهای اتاق چنان که مثل آینه بسیار صاف و بیمونج بتونه تسکیر منعکسی دیوار سفر. بعد که روز چیز مساور شد، تو پرده رو برداشتن، نقش دیوارهای چینی منعکس شد در اون اتاق بومیان و وقتی که شاه آمدید، هر دو عین هم دیگه است، گفت قصه چیه، مطلب چیه و بعد, بعد مولانا البته نتیجه ارفانی میگیره میگه تو دلتو باید پاک بکنی، تو باید صاف بکنی، به یا آینه بکنی، تا نقش حدیقت خودش در اون تجلی. در حال میگه که زی آخه زیبایی چون منشه زیبایی و منبع زیبایی حضرت حق اینالله ان الله جميل و یحب الجمال باز از احادیثی که خیلی صوفیه بهش استناد کنه اینو که میگه بر جمال تو چنان صورت چین ایران شد که حدیثش همه جا بر در دیوار مات شد اگر نقش چین مات شد و بی حرکت اومد در در اثر شیفتگی به جمال این لمدوه در لباس معشوب ازش حرف میزده اینجا گویه کسی بوده که رفته از خوینا و غزل اینه شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برم کوتاهی است که خیلی توضیح هم نداره نمونه شعرهای عاشقانه هم هست که به کلی غیرهارفان است. میگه شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برم روی که او سیر ندیدیم و برم گروهی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود بار بر پست و به گردش نرسیدیم و برم بس که ما فاتحه و هرز یما میخاندیم و از پیش صوره اخلاص نمیدیم و برم حشبه می که از کوی ملامت نرمم دیدی آخر که چستان به خریدیم و برم شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن در گلستان و سالش نچمیدیم و برم همچه حافظ همشب نال و زاری کردیم که دریغا به نرسیدیم و برم. ظاهرن کسی بوده از دوستان حافظ و معشوق احتمال قوی اینست که نبوده دوست و عاشنا بوده ولی خب ارز کردم لباس معشوق در تن ممدورش میکنه کسی بوده است و مسافر بوده ظاهرا رو میرفته و مثل این که بیخبر هم رفته بوده اینه که حافظ این غزل رو سروده غزالای حافظم به حاصل دنبال مسافر میرفته و به همه این مقاصد می رسیده هر جا او می رفته قبلا غزل بوده این است که به دست او می رسید براق و فارس گرفتی به شعر خوشحافظ بیا که نقبت بغداد و وقت تبریز است غزالاش با اینکه که دیوانش خودش در دور زندگیش وقت جمع نکرد و بعد از مرگش دیوانش جمع شد ولی غزالاش در دوره حیات خودش به همه جا تاهند تا یه مکان ببین و زمان در سلوط شرک این طفل یک شبه رای یک ساله می این هینه به هر حال شربتی شربت اصلا به معنی نوشیدنی نیست و حتی پیچ لازم نیست که درش شیرینی باشه یا هیچ لازم نیست دواه باشه چنان که در اصطلاح تپ هست شربت یعنی یک یک چه یک جیدره، یک پرس به قول چلویی‌ها نوشیدنی او رو میگن یک شربت آب یعنی اون مقدار آب که آدم در یک بار نوشیدن، بسرق میگه شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برم اینجا احتمال این بسیار هست که مرادش اگر دوست باشه این کنایه از نشستن و صحبت داشتن و گفتن و شنیدن باشه او هم باز میشه تعبیر کرد این که محذر آدم دانا و اونا لذت بخشه و حتما لازم نیست که معشوق باشه یا لبش آدم ببوسه ممکنه به این ترتیب تعبیر بشه شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت روی محبیکر او سیر ندیدیم و برفت روشنه مطلبش فقط این روی محبیکر باز در نظر شخص دادم کسی رو که دوستش داره هر شکلی که باشه به نظرش زیبا میاد بلکه اصلاً در حقیقت چیز رو نمیبینه. گپ گفت, گفت زنی عاشقی داشت و این عاشق میامد و هر شب و این میدید و بوی آخری هم دسترسی بهشون دست و دستیسین دوتا به یه خیلی مشکل بود و مرد مرد عاشق و زحمت بسیار می آمده و می و یه روزی می که یه خالی توی صورت معشوبه که این خال این خال از کهی توی صورت تو هست معشوب می گه که مثل این که در عشق نوکس پیدا شده عشق تو داره سستی می گیره گفت تو کفانه که همیشه این خال بود صورت من بوده و تو تا روز اینقدر محبه دیدار من بودی که این خوال نمیدیدی حالایی که داریم بینی معلوم میشه که عشق دیگه این هست یه ای آدم کسی رو که دوست داره به نظرش زیبا میاد حالا هرچون میخواد باشه پس روی محبه که اشکالی نداره بازه گوهوی از صحبت ما نیکش به تنگ آمده بود این نیک اینجا قیبه یعنی خیلی بس صحبت اصلاً به معنی دوستی و ما در زبان فارسی فارسی رایج ایران اینو تبدیل کردیم به گفتگوی در حالی که خیلی مذهبتره که گفتگوی دو نفره رو گذاشتیم مصاحبه بسیار کار نداریم که اینو عرب میگه مفاوضه خود عربا میگن مفاوضه اینترویو ولی حالا مصاحبه یعنی صحبت کردن نه متقابل ولی ما یه مصاحبه داریم یه مصاحبت داریم اینا هر دوش یکیه یکی در حال رفت یکی در حال وصله مصاحبت یعنی دوستی و رفاقت می‌تونیم بریم در فارسی مصاحبه یعنی گفته بود با رفیق میگیم در مصاحبت آقای نور رفتیم به پلانجا یعنی در خدمت ایشون میریم که جایی مصاحبت و مصاحبه هر دو یکه هر حال صحبت به معنی دوستی و رفاقت فقط با مصاحبت هم به همون معنیست، مصاحبه هم به همون معنیست، حالا خب به کار می‌دارند. چوبشون هم که نمی‌شه و در افغانستان، این به صورت دیگری مصاحبت، صحبت به وقتی دید. صحبت معنی همه و کامجویی جنسی است. و بنابراین یه وقت یه بره به اینکه دیروز خانم زیارت کردم، باشون صحبت کردم، تا گروش طرف <تصفيق> صحبت و یعنی بده اینا سو تفاهم است که ممکن پیدا بشه ولی صحبت اصلا به معنی دوستی و رفاقت همی که اینجا میبین گروهی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود البته حافظ میدونه که هیچ اونطور نبوده و طرف هم اگر،, اگر غیر از این بود این رو نمیده. و با قیده تردید، گوهی یعنی مثل این است که گوهی از صحبت ما، نیک به تنگ آمده بود بار برپست بست و به گردش نرسیدیم و برم از بیت آخر هم که بهش میرسیم میبینیم که این شخص مثل که بیخبر رفته بوده که حتی به خداحافظی هم نرسیده بودن نه عجله داشته یاد حالا، کیه واقعا؟ خیلی غزل های هست، من جیر نکته اصاسی رو اشاره بکنم اون است که حافظ مثل هر شاعر درجه یک مثل هر شاعر واقعی غزلاش شهن نزول داره یعنی این نشستم شب توی انجامنی یک چارت با هم گوشنم باید میگن که این غزل رو بریم بسازیم همه و چه بکنیم بعد بیان زورزورکی یک چیزهای واقعی سر هم کنم وردارم بیارم حافظ اول باید متحصر می‌شده از یه چیزی که بعدی اینو بسیاری از این چنان زولا هست بعضیش هم نیست بسیار کسانی که اشاره می‌کنه ما اصلا نمی‌دونیم چی، ما اصلا این شخص رو اصلا نمی‌دونیم چی. باید تا اسم شخص هم برده شخص شناخته نیست حرام خوانداری نوشته شد لشکر خم بی عدد از وقت می‌خواهم مدد تا فخردین عبدالثمت باشد که قم کند این فخردین عبدالثمت رو ما نمی‌شوسمیم در مراجعه اون دوزی نیست هفتصاد که از مرده اسمش تو کتابای اون دوزگار نیاد ما هیچ راه نداریم بدونیم کیه و این آدم هم <تصفيق> اینکه اینجا که اصلاً نیست بس که ما فاطحه و حرز یما می‌خوانیم سوره‌ی اول قرآن رو بهش میگن سوره فاتح تول کتاب یعنی <تصفيق> افتتاح خدا با اون میشه در زمین اینجا باید ارز کنم که پیغمبر اکرم خودشون مقرر فرمودن که سوره ها بشه ترتیب بر قرآن بیاد بر کدوم از په کدوم بیاد حتی گواهی دو تا سه تا آیه که نازل شد میفرموندن که این آیه ها رو کجا بگذاری بین کدوم بسمت و کدوم بسمت بنابراین سوره همد رو هم که اولی کتاب بود روشتن به دستور رسول اکرمه و فاتحه کتاب این این سوره خیلی خیلی در حضیلتش گفتگو شده عرض کنم که یه اسم دیگرش سبع المسانی سبع میگن در اینکه هفته آیه داره محسانی هم میگن برای اینکه از همون سانی و ایناس معنیه اینکه دو بار نازم شدیم کفتن سوره فاتح کتاب تنها بخشی از قرآن هست که یک بار در مکه و یک بار در مدینه دو بار نازم شدیم و تفسیر این و معنای که در این هست بر, بر کتاب های تفسیر برشتن که معادل تفسیر کل قرآن به هر وقت فاتحه رو در موارد بسیار توصیه کردم که خوانده بشه از جمله در نمازهای روزانه که حتما در هر نمازی دو بار باید سوره فاتحه تو کتاب خونده بشه و پنج نماز داریم روزی ده بار باید فاتحه کتاب بخوند به همین دلیل است که اوید زاکانی از یه مولانه از یکی از علما حرف میزنه از علما دین یکی که فلان عالم مولان آن اونم مزفر فلان گفتگو میکرد راجب این اینکه علم رو باید در کودکی آمو و علمی که در کودکی بیاموزن همچنان نقش زن میشه و هرگز بیرون نمیره و العلما کرد کن نقش نجر از این حرفا میگفت مثلا من سوره فاتحه تول کتاب رو در بچگی یاد گرفتم و اکنون پنجاه سال است که نخوندم هنوز یادم نرم با بس که ما فاتحه و هرزیم هرز به معنی اصلا نگهداری است و یک مقداری دعاهای مخصوص هست معتقد بودم که اگر کسی این دعاها رو با خودش داشته باشه صدمه بهش نمیرسه مثلا از آسیب نمیران دوزد و راهزن و از قذب سرطان اینها در امانه یکیش رو از امام جواب محمد تقیی می میکنم و معروف است به هرز جواد یکی هم همین دعایی است که معروف است به هرز یمانی و میدونید که هرز جواد احتمالاً البته بنده متعستقم که نه علم ملایی دارم نه نون ملایی خوردم در تمام عمرم این که عقلم اگزا خیلی نمیرسه ولی گویا یا هرز جواد دعایی که از حضای جواد منغوله و روایت دوته مالش یه البته من این هم زیر حدس میسنم ببین هم هست که علی هم قبول داشته و هر یمانی بدون شک دعاییست که بین علی سنت معمول بگید پس که ما فاتحه و هرز یمانی خوندیم و از پیش سوره اخلاص نمیدیم و بره سوره اخلاص هم اسم قلحوبل نوحدی اون سوره معروف است به سوره اخلاص پس این فاتحه کتاب یکی سوره اخلاص بس پیشتون به یه اخلاص دمیدیم اون برن عشوه میداد عشوه به معنی فریبه فقط بنابارین هیچ ربطی به اینکه خانم یه داشته باشه البته خانم ها دارن ولی آهایون هم می داشته باشن هر که فریب بده کسی رو با سرش شیره به و به یه نحوی او رو حاصل بکنه از حقیقت نمیشودن عشق. و حافظ میگه بانگ گاوی چه صدا باز دهد عشق مخر اشاره به داستان سامری است که حالا من فرصت گفتنش ندارم. ولی میگه این سری گن از گاوی بانگ گاوی چه صدا باز دهد عشق مخر سامری کیست که دست از یادت به حساب عشبه یه فریبه، اینجا هم میگه این دوست من عشبه میداد دقیقا با دادنم چنان که فریب هم با دادن بود. فریب دادن عشبه میداد که از کوی ملامت نروم کوی ملامت کجاست بود؟ ملامتیه بوده البته ملامتیه فرقه ای هستن از خوفیه که اینا برای اینکه احوال و مقاماتشون از نظر غیب پوشیده بمونه، تظاهر به کارهایی می‌کردن که اعتقاد مردم از اینا سلب بشه. و اصلا مرید پیدا ن، برای نتیجه خود این مرید گرفتن و دست‌گوسیدن و دنبال اشخاص راه افتادن این تظاهر آدم در. و ملامتیه کسانی بودن که حالا یا عمله هم این کار میکردن یا نه به هر حال تظاهر به کارهایی میکردن که مردم حسن اعتقادی در حقشون پیدا نکنند در مورد یوسف ابن حسین رازی میگویند که رفت دیدش که پیری نشسته و پسر زیبایی هم روبروش است و یک سراحی یعنی تنگ شراب جلوش بعد که اون پوحالو داستان خیلی درازی که من به اون داستان کار ندارم بعد از این که میفهمه که این پیر خیلی صاح مقام است و پیر خیلی عادی بودی و در احوال خیلی عجب برز که باز چرا این کار می‌کنی تو محله بدنام محله دورش همه زنان بر هم سکونت بدی میگه چجوری میگه والله این خونه خونه پدری منه و وقتی اینو خریدن هیچ این خونه‌های اطراف نبوده بعدا اینا اومدن سکونت کردن منم وقتو خونه عوض کردم اینا نذاشتن بجاست میگه این مسأله چیه بودی که این پسر منه که دو دورو من و برآن درس درسی این ستراهیر هم یک کسی شرابشو خورده و پرد کرده بود بیرون من تون ظرفی نداشتم برداشتم و تدهیر کردم با توش آب خودم بعد اون مرد اون مردی که اومده بود پیش یوسف ابن حسین خودش مرد پرهیزکار متقیه خیلی خوب بوده اتفاقا یه بابایی زنش رو وقت میخواستیم به سفر حج زنش میسپرده دست این آقا دست اون مرد میگه من میرم میخوام برم به حج و به هیچ کسی اعتماد ندارم و این زن به دست تو برای که دیگر ممکنی ممکنه که بلایه سر من بیارم اینم میتذیره بعد اتفاق میفته که بعد از چندی چشمش میفته به این زن و عاشق میشه به تویی که خواب و آرام ازش سر میشه. چون مرد پرهیزگاری بوده و واقعا نمیخواسته این بدبختی سرش بیاد میره پیش پیر خودش و میگه که من یه چنین گرفتاری پیدا کردم و چه کنم این فکر این،, این زن از مغز من بیرون نمیره و من نمیخوام کاری بکنم که خلاف شرافت و خلاف دین و تقوی باشید میگه تو باید بری به ری از خراسان بری به ری اونجا یوسف ابن حسین رازی رو سراغ بگیریم بریم پیش او دوای او. تو پیش رو بزید این یه میاد به ری از یکی این فرس خونه یوسف ابن حسین کجاست میگه این مردی که عرق خورفه در صفتاری چکارش داری؟ از دومی سه دومی این فرس اینه همه فرس میدن بر میگرده بر میگرده میاد پیش گیرش میگه من رفتم اونجا و هرکی گفتم این آدم با بدفاره، خیلی هرخوری است و میگه رفتی فرس اونیان نرفت میگه گفتم دعوای تو پیش اونه، بله میشه میری بعد دیگه بعد می‌گردم و میپرسو، آخه مردون خوشمیدن میگه ولی می من یه بدهی دارم باید بش بدم و اینا و خلاصا نشون یه خونه رو میگیرم یاد می این منظره رو میگیرم میگه خب تو با این کاری و با این مقام و با این حال و با این وضع آخه چرا این بساطو درست کردی که توه مردم مردون خودت جربونی میگه من این بساطو برای این درست کردم کسی ذهنش رو ایرو امانت من برسونه یه میگم محض اینکه این حرف رو از ذات تمام اون احوال شیفتگی و فیل از من سرد شد و بردشد. به هر جهت، داستان در تحصیلت اولیا هست با جوزیات شایی لازم گشته بشه، می‌تونم جوزی شد. عرض کنم که این اشتباه به هر حال این هست، میداد که از کوی ملامت قراریم، اینا جماعت ملامتی بودن و گروهی از جمله مرهومون بامداد بود که بی در گفت داشت من نمیدونم که ادراعا داشت یارا من خدمت چون چون نرسیدم نمیدونم ولی خب خودشو گفت میدونست و صاحب مقامات و احوال میدونه و اناءالام که بوده بعد یه رساله نوشته به نام حافظ شناسی یا الهامات خاجر و اونجا این مسئله رو انبان کرده که حافظ جز ملامتیه البته شعر های بسیار هم میشه پیدا کرد که تایید کنه این نکترره اما شرای دیگر هم میشه پیدا کرد. که عید نکنه یا در مخالفت میشه عشبه میده که از کوه ملامت نروم دیدی آخر که چنان عشبه خریدیم و برد میگه وقتی که عشبه خریدنم به معنی قبول کردم تو عشبه میده به طرف عشبه میخره اونجا توی چیزم توی اون بیت هم که خوندم قبلا میگه با این چه صدا باز بازدهد عشبه مخر خریدن میگه او اشته میداد که نمیرم ما وقتی اشته رو خریدیم و قبول کردیم گذاشت اشته میداد که از پوی ملاحط نرم من دیگی آخر که چونان اشته خریدیم و برم شد چمان در چمن حسن لطافت چمیدن یعنی به ناز راه رفتن و در حقیقت خورامان و قدم زنان راه رفتن به خصوص که این چمیدن برای برای آدم زیبا بوده سعدی غزل بسیار قشنگی داره دل برای وجود وجودت همه خوبان آدمان در سروران در سر صغدای تو خاک قدم هن جمعی در طلبت سوخته یا، عشق خلقی در هوست قرقه دریا بیقم گاهگاهی گاه بگذر بر صفه دل تا سناییت بگوین و دعایی بدم هر سر زلطه پریشانه تو مجموع دلیست تا نگویی که اسیرام کمند تو کمن بعد میگه در س... کمن سرب ستا دست دست و سنوبر بر پای که اگر قامت زیبا به نماویی نکمن کمیدن به این من شد در چمن حسن و لطافت. لیکن، در بلستان بسالش نچمیدیم و برن همچنه حافظ، همیشه اف مال کردیم که ای دریف ها به وداش نرسیدیم و برام ودا آسیش میشه بدرود بدرود کردن، به معنی خدا خداحافظی و بدرود معنی خدا، حالا ما میگیم خداحافظ برای همه، ولی خدا حافظیه به معنی که برای سفر طولانی برند یا طوری باشه که احتاعمالا یا بعد ملاقات غیر ممکن باشه یا اینکهقل دیر مدت باشه اوور رو میگن پدرول سعدی در گلستونش میگه که من رفتن در جامعه کاشق میز پسر محبی بود امم هرکی از من پرسید و اینا رو گفتم که عربی گسش خوندم که قالب دوغاله به آره اشعارو در این سرزنین به پارسی باشد و بعد میگه من شعر پارسی گفتم که طبعه تو را تا حوث نه شد صورت عقل از دل ما مهد شد ای دل اشعار به تو سید ما به تو مشکول تو با امروزه میگه کسی گفته بودش که فلان سعدی سعدیست و اومد و لط کرد به منو محبت کرد چه کرد و یکی دو روز اونجا بودیم مهربانی بسیار کرد و من میخواستم برم بعد در گردن من آویخت و روی همدیگر رو بعد میگه که پوسه دادن به روی یار چه سود هم در آن لحظه کردنش بدرود برای که سعدی دیگه اعتمار اینکه به کاش قرد بیاد و اون بچه رو بینه دیگه وجود نداشتیم پوسه دادن به روی یار چه سود هم در آن لحظه کردنش بدرود سیب بویی یاران کرد درست به جای بتو سیب بویی ودا یاران کرد که از این سوز سرخ و زنسو زهد که این دریفا به وداش برم بله این آه چی که چیز نیست من نزیدم که محفظه چیز دوت رو این محفظه آقای این جبیه این ای درز فرمان ختم گفت مکش تا نروم ما سر خیش سختش نکشیدیم و برم یکیم یکی گفت از خود ببرد هر که به سالم طلبت ما به امید وی از خیش بریدیم و برم من فکر نمی کنم یعنی تو من تا امروز دیدم این دوباری دوست احتمالا شاید تو چاپ اوتسیونا باشد بله بله برحال منده نیدم شعرم بدویست البته یه مقدار زیادی علاقه آدم به شعرم مربوط به الفت است که با شعر داره و عادتیست که با شعر کرده داهی یه نستهی رو میبینه اول چون برتب عادتش نیست فکر کنه که این چایی اینجوری به درد نمیخوره بعد که فکر میکنم اینه که این مراتب بهتر از اون اطولی است با که خودمون صورت اطول در ذهنش این است که این دوبایت هم برحال هست این نسخه نیست اینجا یک ای چیز دیگه هستم کشبه دادن که آقا بخواب نمیزید کشبه دادن که و گزنید آه اینکه حالا اینو تمام جوزیات چه البته اونجا توی, توی نسخ بدلاله هم اینو هست من نگاه کنم میگم تو نسخه های خود دو چهانگلی این دو بیت هم هست یعنی؟ تفرد تقریبا، تحویز به معنی پناه بردن به خدا هست در حبیقت اون توی اللهم از شیطان رجیم یعنی پناه میبرن به خدا و تحویز به معنی پناه بردن بله حبت و برای یک خاصیت کار stepkin من نمی دانم فرش باشد باید می گرا کنم می گرد فکرum کنم ه درکون بیمار یا بیمار من یه ممکنه بلی کلمه مار از مردن میاد دقیقاً مار رو چون هیچ که مردش رو ندیده و چیزی ندیده اونا نشان جاپیدان بودن و در خوی بسیاری از جاپ، از جمله هندویتان مقدسه به این دقیقی که در حقیقت قشبه بهش میدهدن مرگ ما مار رو نگیزیم، ما. ها بله بله کنن که را نمیدونم چاید، چاید به هر جمعه کلمه مار از مردن رو شک. حالا شما لطف بکنین این غزل بخونی عزل... در ازل در ازل پرتوب حسنت ز تجلید هست. در ازل پرتوب حسنت ز تجلید جمع زد عشق پیدا شده آتش به همه آلم زد جلوهی کرد رو خد. دی ملک عشق ندار ملک دی ملک عشق ندار این آتش شدو شد از این قیلتو بر آدم زد شما عینکتون نیست سواد تو جا مونده بدم اینک خدمتون عالی گرفتری ها. خب با اینکش بهتری بله خدید عقل میخواست که از اون شوله چراغ افرو غیرت بدرخشید و جهان برهم زد مدعی خواست که آید به تماشاگه را دست غیب آمد و برسینه ی نو محرم دیگران بیگران قسمت همه بر عش دادن دل غمگیده ما بود که هم بر غم زد جان الوی حوث قلدی. قلدی. جان الوی جان چاق زنختان تو دست در حلقه اون دلف خم خم زد حافظ روز عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم این بیت رو بهتر اینجوری بخون حافظ آن روز ترفنامه عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم یعنی وقتی عشق تو رو تعهد کرد از سر همه چیز گذشت از سر خورنی اینا گذشت <تصفيق> این. برحال این وزل رو که دوستان شنیدن اگر دقت پرموده باشن شعرهای آفز خیلی رعبون و ساده است. به همین دلیل مردم میخونن خوش آهنگ هم هست موسیفی خوب داره میخونن در خیال میکنن که یه فهم... لذتی هم میبرن خیال میکنن که فهمیده بعد که بپرسی ازشون که خب این چی میگو در ازال پرتا و حسنت تجلی زد تجلید هم زد پرتا کی؟ تجلی چی چیه؟ بعد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد عشق کی؟ به کی؟ جلوهی کر روخت روخت کی؟ دید ملک عشق نداشت این آتش شد از این غیرت و بر آدم سد آخر دوباره نمیخوام من بخونه غزل کاملا به صورت مهمه هست یعنی یه ذره دقت بکنین و نگاه بکنید میبینید که هیچ کدوم از این قیداش محکم نیست به حافظ کم از این غزل نداری. ندارید یکی دیگرشون دوش دیدم که من لاکتره یکی دیگه اش عکس روی توچو در آینه جام افتاد سوفیاس پارتو می کرد خانه خاموش افتاد یکی دیگه اش نالها دل طلب جام جام از ما می کرد بازم ها حالا من باید ورق بزنم حسنت به اتفاق ملاحات جهان گرفت آهی بود اتفاق جهان می توان گرفت اینا غزلای است که یه بار فرهنگی و یه سابقه یه علمی و ادبی و اعتقادی مفصل پشت سرش داره و چون در اینجا به اشاره خیلی خیلی محتصر اکتفا کرده این مفهوم میسیم من این حتاب مرساد العباد آوردم و بعد و از اینکه یه ای مقدار توضیح دادم خواهش خواهم کرد از مثلا آقای نوح که بحث این بابار رو به تجلی بخونم. در حال تجلی اصطلاح ارفانی خیلی دقیق خاصی است که مفهوم خاص داره هر روزگاری که حافظ سعدین به کار می بردن. همون مفهوم داشته که می به جبریل گفتش که چنین گفت سالاور بیت هرام که ای پاق مل برتر خورم گفت نه و نمی که گرد یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزدتر فروغ تجلی یعنی اینا را قدیم میدونستن ولی بعدها از دوره صخبیه به بعد این لغتها رو فار بردن بدون اینکه که معنیش بفهمن بدون این که اصلا بفهم قضیه چیه محروم شهریار باز حالا یه مختصر ربطی داره البته میگه عبدیت که به هر جلب تجلا میکرد دلربایی همه در آینه ما میکرد عبدیت که به هر جلبه تجلا میکرد این تقصیل شهریار نیست تقصیل این است که این مطالب یه جوری دیگه رایت شده بوده که همه هم خیال کرده میدونن هیچ اشکالی نداشته حالا بنده در حال تجلی رو خواهم خواهش کرده بخونید و اینجا هم زبط این کتاب باز ممکنه در دست بعضی دوستان نباشه یا فرصت نکنن باز تو نوار باشه بهتری در حال اول همه کلمه ازل رو بنده ارز بکنه یه ازل داریم یعنی بی آغاز یه عبد داریم یعنی بی انجام و یه سرمد داریم یعنی بی آغاز و بی انجام در فلسفه ثابت شده است که چیز بی آغاز نمیتونه انجام بشه. یعنی بی آغاز تنها و بی انجام تنها فقط لفظ نمیشه که اون سر یه چیزی بی انتها باشه این سر یه چیزی بیاد اینجا خرد باشه این امکان نمید. برای دلیلش هم میگن پرض کنیم که دوتا زنجیر از اینجا از حلوم های کشیده شده باشه تا بی نهایت یکیش یه متر میکشیم جلو دیگه. علاوه فن زنجیر کوتاه‌تر یا نشد؟ بگیم کوتاه‌تر شده که پس انتهای رو. بصورش درست. ای ببین کوتاه‌تر بریدیم ما این جزیره چون بنابراین بی آغاز بی انجام هم هست. اما این کلمات که به نظر خیلی عربی محکمی میاد و ارز کنم که ازلالازال و عبدالآباد و تحبید و معبد و نکنم اشتقاقات مختلف از عربی هم هست ازش ظاهرن باید چون در اون روزگار در روزگار نوزول قرآن که هیچ مدت ها بعد هم این قبیل مفاهیم رو که خیلی مفاهیم است انتظاییست است که ذهن باید خیلی ورزیدگی داشته تا بتونید درد بکنه اصلا نداشت اما در فارسی در فارسی که نه در پهلوی و عوستایی اونجا های پیشاوند داشتیم الف مفتوح که الف نفیه بوده مثلا مرحوم قریب نوشته من نمی‌دونم این چه هد سه هفت داره نوشته ایران و ان ایران آ یعنی دوز ایران و معمول است الان که ما هم مرداد رو میگن امرداد کنان که شنیدید این درست است که در اوستایی، امرتاد یعنی نمردنی و جاویدان ولی تا دوره سلطنت رضا شاو هیچ وقت این کلمه امورداد در شعر نست هیچ جا به کار ننمید عرباب که خسرو زردوشتی ارز کنم که کارفرداز مجلس بود مئلس هم هر سال یه تقویم چاپ میکرد تقویمی چاپ کردم. اونجا ماه مرداد رو نوشتن امورداد دریش هم بود که گفتن مرداد یعنی مردنی امورداد یعنی اموردنی پس امورداد درست بله در عوستایی این درسته اما این علف نفک اصلا به فارسی منتقل نشده سعدی داره یکی خله مرداد محتوده کرد تیمار دی خاطر آسوده ده. سعدی پیغمبر زبان امروز ماست تازفه مهر آیت آید آبان تازفه پس تیر باشد مرداد هر جا آمده این کلمه از روز اول شعر فارسی تا آخر مرداد بعد هم کلمه در زبان روبه حالا چرا شده اینجور برای این کلمه سابیده میشه کم کم برای اینکه رو زبان خوب بغلطه شاید یه روزی هم مرداد بوده ولی مرداد ساده تر بوده گفتن مرداد و هیچ یه اینجوری صورت اسم خاص در اومده معنی شد کسی معنی مردن اینا نمیده اصلا است که رو سادگی میره کلمه در در, در گردی در زبان نمیشه برش کردیم در صورت اول که این خسرو کلمه ای که این چه لقب پادشاهان ساسانی بوده این در اوستایی بوده هاوس رونگه ها. پای درست که حالا ما این کلمه این درازی رو با اون صدای قنعه تو دماقی هاوس رونگه ها اوزری برای اینکه اصل دره و اصل در بشه این کلمه که ابوالحسن مدنی در هر حال عرض کنم که اه ای نفس داشتیم بر پحلوی بوده در عوستایی هم بوده ولی به فارسی نیامده این یک مقدم دومیم که ظاهرا کلمه ازل و عبد از پهلوی گرفته شده و معرب شده البته من قسم حضرت عباس در با. باب بخورم سند متخنی ندارم اما در عربی این مفاهیم اصلا وجود نداشته و اینجوری که حالا عرض می کنیم خدمتون می بینید که ظاهرا نوست که درست تره عرض که کلمه سر اولا سین با خیلی بدک چنان که کلمه حرف اس در این یا فرانسه و زبان های دیگه گاهی زه خونده میشه گاهی اسم از این دلیل ساده تر ندیم ره و لام هم به هم بدل میشه در زبان های باستانی اصلا لام نیست در عوست های فارسی باستان لام اصلا نیست که الان در فارسی هست اینا اگر بیشش در اون زبان های باستانی باشه ره هست معنی آغاز هر چیز هم هست علاقه دارید خیلی معنی دارید یکشم آغاز هر یعنی بی آغاز اثر یا اواش شده ازل سینش به ز شده رشم به لام اثر شده یعنی بی سر شده شده ازل و همینطور از ابد اپت یعنی بی پا کم کم شده عبد اصطلاح فلسفی است محقوم فلسفی است و این رو وقتی که قرار شدی که مطالب فلسفی رو به عربی بگن این ها رو بام گرفتن صورت معرب در آوردن نشد ازل و عبد لا ظاهرا مثل این که هر دیشه پارسی گره اینکه ما در این فهم کار میکردیم در اون روزگاران از دوره انوشی روان به ساله های پرسطی اینا از اونان رجای دیگه ترجمه شده بود از هند همچنین با هم با مفهوم مفهوم بی آغازی و بی انجامی چیز داشتیم آشنایی داشتیم بنابراین ازل اینه اما اینجا پرتوب حسن حق بدون شد به دلیل اینکه حدیث داریم که انالله ها جمیلون و یعنی جمال و به طور کلی صفات الهی رو میگن دو دست که صفات هست که صفات جلال صفات جلالی و یکی صفات جمعی صفات جلالی صفات که مستلزم قدرت و قهر و قلبه و امثال اینا از مستر جلال حبید ساده میشه. صفات جمالی اونایست که محبت و رحمت و انایت و بخشش و این قویر مسئلی حدیثی این داریم کن تو کنزن مخبیگن فا احباب تو ان اعرف فا خلق تو الخلق لکی اعرف من گنجی بودم پنهان چند معرب گنج بود گنجی <تصفح> بودم پنهان دوست داشتم شناخت شوم مردم را آفریدم تا شناخته شوم رو این ها از است که خیلی خیلی مورد احسناد صوفیه و مورد استشحال صوفیه است. بنابراین خلقت عالم و به خصوص آخرین اونها انسان باشید نخستین فطرت به قول فرزوسی نخستین فطرت حسین شما بشر اینگرد که اتخابوده که فکر کرده مقصود از خلق آسمان ها و زمین این مسائل بالاخره سرانجام خلق اشرف مخلوقات این در قرآن هم آمده از قال رب بوتل الملائکت همینی جایلون فلعرزه کلیفه وقتی که فرمود خداوند به فرشتگان که من جانشینی از خود روی زمین و و قابلن باید زمین باشه، از زندگی رو زمینم باشه، تا جانشین تشریف دید هیده نمیشه و این مسئله نخ... نخستین فطرت پس این شما خود چهر فردوسی که هم شنیدید این رو من بهتر اینجا توضیح بودم برای که لازم میشه اینجا تو این مطالعه فردوسی میگه نخستین فطرت فطرت یعنی همون خیلقت فاطر و سماوات والعرض قرآن بسیار آمده یعنی و زمین نخستین فطرت یعنی اولین مخلوقی تو پسین شمار که آخر همه دنیا آمد نخستین فطرت پسین شمار توی خیشتن را به بازی نده حالا یه اصطلاح فلسفی هست میگن اول فکر آخر العمل اول فکر آخر عمل این معنیش اینه که میگوین برای اینکه یه چیزی به وجود بیاد چهار تا علت باید با هم جمع شید. یکی رو بهش میگن علت غایی از غایت یعنی آخرش یعنی بنده چون ناراحت هم زمین بشینم، فکر میکنم یه چیزی بسازم که بتونم روی او بشینم و از ناراحتی نشستن روی زمین رها بشینم اول فکر بزنم بعد میرم علت مادیشو تیه می کنم که چوبی باشه بعد علت فائلیشو تیه می کنم که اوستای نجار باشه بعد علت سوریشو فکر میکنم که ما اون روزا سفاره چه جور چجور پولش ارزش، پایاش پشتش سایر مسائل بعد از اینکه این, این ساخته شد اون وقت این علت قایی که نشستن همون تازه چیز میشه تازه حاصل میشه یعنی اول علت قایی میاد بزن <تصفح> ولی آخر همه در عمل اون علت حاصل این میگن اول فکر آخر و لنه نخستین این فطرت پس شمارم دقیقا همینه یعنی خداوند میخواست ای روی زمین قرار بده برای این کار با از آسمان ها و زمین و سایر مساعد یکی یکی این هر همه ساخت تا بالاخره آخرش خمرت و تینت آدم به یده یعر و این هم من خودم سرشتم گل آدم رو به دو دست خودم مدت چهت بود گل آدم رو سرشت رو کنم به پیمانه زد که اون حالا بحثی دوگری داره همه اینا برای این بوده که گفتم خداوند گفته است که پنتوکنزن مخفی گن من گنج پنهانی بودم به احباب توان اغرفت و خلق تلقه رو که اغرفت خداوند کی گفته خداوند مقیده به زمانه معارین این اراده خداوند ازلی است. بر ازل خداوند چنین چیزی گفته در ازل پرتو به حسنت تجلی دم زد. نه حرفشو زد. واسطیه اجرای این تجلیش عشق پیدا شد و آتش معنا اله علت این که مل... این این آیهی که محصش در مورد چیست میگه و از غال رب مکلی الملائکه تهنی جایلون فی الارزه خلیفه قالو اتج الو فیها من یفصدو فیها و یستکت دما و نهنو نصب بهو به همده که و, هم و نغده سلک گفت که وقتی که خداوند فرمود که من میخوام یه خلیفه ی جانشینی از خودم روی زمین بگذارم فرشتگان گفتن که آیا در اونجا کسی رو خواهی گذارش که در روی زمین فساد بکنه و خون بریزه و نحنون و سببهو به همدکه و نقدس و و حال آن که ما استطایش تو تصدیل میگیم و تو رو تقدیس میکنیم کنیم خداوند گفت چیزی من میدونم که شما نمی حالا حال اعلم و مالات اعلمان و علم آدم الاسماه کله ها بعد همه ازمار نام ها رو به آدم مامو سمعرز هم علال ملائکه بعد اون موسوم ها، مسمه ها رو به ملائکه عرضه کرد و غاله انبعونی به اسماع ها اولا ها او گفت خبر بدین به من از, از اسم این چیزها. ها حالو سبحانه که لا الملنا الا به معلم تنافه گفتن پاکا که تویی ما دانشی جز اون تو ما رو تعلیم کردی نداری. یعنی دانش اونجو نداریم فقاله یا آدم و انبه هم به اصمار بعد آدم گفت که حالا آدم اسمای اینا رو به اینا بگیم فا آدم گفت و بعد خدا فرمود که فرشتگان آدم رو سجده کنن و باقی داستان که ما کار نداریم حال اون چه در اختیار آدم بوده در فکر آدم بوده که چند بار تکرار میشه یکم در داستانه هاروت و ماروته اون جو فرشتگان می زنن که خدای روی زمین مردم فساد میكنا، خیلی به در سوسیالیتی دارن اذیت میكنا کلان خدام میگه که نه شما نمیدونید اون خشم و شهوتی که در سرشت انسان سرشته است این کار دست ادمه میگه گفتن نه ما ما میتونیم که فرزگار باشیم کاملا فلان گفتم نمیتونین اونا گفتن نه اوه خوب بیاین به صورت آدم بریم رو زمین ولی اگر خطا کردین مجازاتون چود بفن هرچ به صورت آدم بفن دوتایی آمدن هاروت و ماروت در بابل سعدی میگه چنین جمیل ندانند بوست در کشمی چنین بلیغ ندانند سه در بابل حافظ جیگر بایدم شدن سوی هاروت بابلی صد اون ساحری بکنم تا بیارم هر حال این هاروت ماروت که البته اسمشون به استاد من مرحوم دکتر مونین تعریف شده حور و و امرتات یعنی خرداد و مرداد که البته خرداد و مرداد اسم دوتا از مهین فرشتگان بیادتون نره اسم برج سال که شده به مناسبت اسم اون فرشتگان بزرگ برحال حال و مارود ظاهرا تحریف شده خورداد مرده به دیگی شد آمدند و مردم پاکیزه پاک اعتقاد پرهیزکار دانشمندی که علم بسیار داشتند و علم فرشتگان نجاستن یکیشون رب قاضی شد مدتی و مسطد غذا نشسته بود، نه تا یه وقتی یه زن خیلی زیبایی آمد و دل جناب قاضی لرزید هیچی به زنک نگاه خریداری کرد و زنک که حواست جم بود و حالا مرافعش رو گذروند به خلاف حق و بعد قاضی گفت خب شما بالاخره به لطفی ما بکنید گفت باشو و باید عرقی ترقیب شب یه باز آوردن اینا رو به انواع فسات ها حالو دیکرد و زنکم باز اینکه محص کرد اینها رو گفت اسم اعظم خداوندی رو من بیاموزید اسم اعظم رو هم در او آموختن و زن به صورت ستاره شد رفت به آسمان و همین ستاره زبرت که این ستاره اسمش در یکی از تفصیلان نوشته بیدخت یا بی هر حال بعد اینها حساب شدن دنک که رو گفت بعد گفتن که خدا گفت خب حالا عذاب آخرت رو میخواد یا عذاب دنیا رو گفتن نه ما طاقت عذاب آخرت رو نداریم هر کاری کردی هستی تو همین دنیا بکن خدایا بعد خداوند اینها رو فرموند که در چاهی در بابل به یک موی سرشون آبیزبون کردن تا قیامت اینجا هستن و اگر کسی بر سر اون چاه برسه علم او یاد می ده. یا علمان ناسسته همه اینا در قرآن هر حال فرشتگان دارای احوال ثابتن من هم که اون لایست شدون من هم سجدان اون یه عده در حال بکوهن همشت یه عده در حال سجودن اصلا خلق شدن برای این بار نه نه شهوتی نه حوثی معهوری خب عکس قضی هم هم عشق هم ندارم چند جا حافظ اشاره کده فرشته اش نداند که چیست بسته مخوان بخواه جام و گلابی یا شرابی بخواه که آدم میسی جلوه ای کرد راحت. دید ملک عشق نداره رفت دنبال موجودی که عشق داشته بشه داشت. این کیه؟ آدم آدم هست که عشق داره و خداوند که حسن داره حسن برای اینکه جلوه پیدا کنه عشق احتیاج داره خداوند وقتی که دم زد از تجلی یعنی هنوز تجلی نکرده آتش عشق در همه عالم. بعد تجلی شد جلوه ای کرده در اون جلوه دید که خب معشوب دیگه سخت ترین مطلب براش بدترین شکست شاید فراش این است که از بکنه و ساری نشون بده و به عشق لبخندی بزنه و طرف تو باغ اصلا هووا یا به کلی قضیار نگیریم یا اصلا روش رو برگرده علت هوای زیادین بزرگترین شکست چه جلوهی که از رو خد دید ملک عشق نداشت عین آفش شد از این غیرت رو بر آدم زد ترجمه فارسی غیرت رشک و رشگ هم حسد نیست دقیقه فرق ده. غیرت اون حالا نیست که آدم نسبت به زن و بچهش نسبت به کسانش نسبت داره و این بعد اینا رو نمتونه نپش پیشتنه نه پیگی چیز بکنه او رو بهش میگن خیلی و همچنین هیچ انتظار بیوفایی و نامهربانی هم از اونا نداره و اگر بکنن میبینه که عوام نه اونا رو با چیزهای خیلی سخت جزا میدن او رو بشکن غیرت تو همه اوید شکاوید از هر کس. درد ده اه با نمیبرم باعث میشم خداوند اون وقت میفرماید در حدیثی که من خیلی غیرت دارم سرکش مشو که چون شم از غیرتت یعنی از غیرت تو را <تصفيق> سرکش مشو که چون شم از غیرتت بسوزد یعنی بسوتت نه دلبر که در کف او موم از سنگ خاران اشاره به همین مطلب. کلبه ای که از روخت دیگ ملک اش نداشت این آتش شد از این غیرت رو بر آدم زن باقی بحث رو تعدن میگذاریم. بنده این بحث مربوط به تجلی رو پیدا کنم که بدم سید نوح رواتی کنه بخونه دوستانم گوششون رو که حتما در ذهنشون نیمونه چون که من که سه چهار در خوندم بازم در ذهنم نمونده ولی به حرام سعی کنم همه مطلب رو لاعقل برای همینجه بگیرن این دستگاه رو هم وزیرین جلویشون که وقتی میخونن این مطالب اینجا زد از اول فصل شروع میکنید به اطفاق اینارم اینا رو هم ببرم فصل نوزده هم در بیان تجلی زاد به صفات خداوندی قال الله تعالی فلم تجلی رب هل جبلن جامله‌و دکن و خرم. ما که الجبل دکن من یه وقتی جلوه کرد خداوند بر او او رو پاره, پاره کرد و موسا. بید. این دنباله ای اون آیست این نوز میخوام دنباله ای اون آیست اینجا و اظغ موسا رفت هر میان ظر ک اون بده خودتون منطور رو قال ل تران لن نحی اووض گفت هرگز منو نخورید ولا که نوع ظه جبل جل ولی به پول میگاه حالا مع تجل دارب حول جوله جاعل اون گککن و خرم موسا سیح سوند تاجو میشه نمیارم اونا چی؟ یهی از که ما تاجو میکردیم. بگاالن نبی صلّ الله عليه وسلم، إن الله خلق آدم، فتجلّا فيه بگاالا ازا تجلّي الله، ازا تجلّي الله، ازا تجلّي الله لشيء خزاء له. یه خداوند که عجیب. آدم رو کرد و تجلی کرد و به به چیزی تجلی میکنه اون در برابر اون خواهده بدون تجلی عبارت از ظهور ذات و صفات الوهیت است تجلی عبارت و صفات جل و علا. چنان که شرح اون بیاید الله تعالی و روح رانی تجلی باشد و در این معنی سالکان را غلط بسیار افتد گاه بود که صفات روح یا ذات روح تجلی کند سالک را ذوق تجلی حق نماید و بسی روندگان که در این مقام مغرور شوند و پندارند تجلی حق یافتند و اگر شیخی کامل صاحب تصرف نباشد از این ورطه خلاص دشوار تا بنیاد هسته که یک روح هم سپادش تجلیم کنه و بعضی از درندگان خیال می که این تجلی سپاد حقیقه و در نتیجه برای خودمون مقام خیلی بالاتری از افور می کنم به گمراه. و اینجا میگه که بسیار روندگان در این مقام و هم مقام مقام تجدی از همون مقام ها در این مقام میگه بسیاری گمراه شدن و ورده دادن، اگر شیخ سالکتر رو پینه باشید اینا بگه این تجدیزاق و صفات خداوندی نیست اشتباه نکنید ممکن است که به گمراه اینا بید. و هرچند در کشف این حقایق، مشایخ متقدم، قدس الله و هم کمتر کوچیدند و تا توانستند از نظر اغیار کوچیدند اما چون این ضعیف، بنابران نظر که بسی مدعیان بیمعنی در میان این طایفه بدید آمدند و به غرور شیطان، به مکر نفس مغرور گشته، به بهر پی چند پوسیده و به حرف طلب به, به چند پوسیده که از افواح گرفتند اند پنداشتن به کمال مقصد و مقصود این راه رسیدند و ذوق مشارب مردم یافته و خود را در مملکت جایز التصرف دانسته و به اباحت و زندقه در افتاده چنان که میگوید پوشیده مرقند از این خا میچند بگرفته ز تامات الفلا میچند نارفته ره صدق و صفا گا میچند بدنام کنندهٔ نکونا میچند خواست تا از برای محک این مدعیان از مقامات و احوال سلوک شمهای بیان کند تا خود را بر این محک زنند اگر از این احوال در خود چیزی نبینند از جوال غرور شیطان و کمینگاه مکر نفس بیرون آیند و روی به سراط مستقیم که جاده مطابعت است نهند و اگر در ایشان درد طلب باقی باشد دست در دامن صاحب دولتی زنند که بر پتراک دولت او به مقصد و مقصود رسند چنان میفرماید جل و علا و اتو البیوت من عوابها و اتو البیوت من ابوابها و, و اگر به این ذیق در این معنی گوید تازاق سفت به جیفه برالائی کی چون شاهین در پرشاهان چون صحبه اگر غذای بازی گردید بازی گردی که دست شهر آشایی و نیست طالبان محق و مریدان صادق را دلیلی باشد به جاده سواب و مشوقی بود به مرجع و معاب اکنون شروع کنیم به تأیید ربانی و توفیق یزدانی در شرح تجلی و فرق میان تجلی روحانی و تجلی ربانی بداند چون آینه دل از کدورت وجود ماسوای حضرت ثقالت پذیرد، به صفا به کمال رسد م... یعنی به صفا به کمال رسد مشروغی آفتاب جمال حضرت حق گردد جام جهنمای ذات متعالی و شود ولی کم نهرک دولت سغالت و سفاده است داد سعادت تجلی و ساعدت نماید زالک فضل الله یعتی من یشاء اما بدین سعادت هم دلهای صافی مستسعد شود چنان شیخ عبدالله انصاری رحمت الله علیه فرمود تجلی حق ناگاه آید اما بر دل آگاه آید و از شیخ علی بونانی شنیدم قدس الله روح العزیز که از شیخ خیش خاج عبوبکر شانیان غزبینی رحمت الله روایت میکرد نهر که بدوید گور گرفت اما گوران گرفت که بدوید گور گره که گره؟ کی بده نهر که بده بید گور گره هر گردی گردون هر نهر که به دوید گرفت اما گور آن گرفت که در کنید یعنی این کسی نه دوید حفاً گور نمیگیره به دوید ممکنه بگیره ممکنه محضورت به انایت هر لازم و محضورت شرط لازم هست بایی کافی نید با, با. دوید و خون ها؟ به همون یه هر کسی بگیره اما هر کسی دویی... هر کسی به لخره و... کسی بدوه میتونه گوخر رو بگیره خلصه بگیره. شخصه. شخصه. شخصه. هر بوداخر نه بوداخر. عزیز من صبح <تصفح> توفیق الهی این شکار شکار میگهد که درنگ و کسی که میخواد نمیگسته همون کسی الان <تصالح> شما همینطوره ست تا شکار جویران شکار اکتا خم دروه میگن بابشون نویزنم دیده است باید از حالا جعب رو بزنی کنات یه دست تجدی رو بزنیم میگیم نهو خواهدی نکنیم باشد که در ابتدا چون آینه دل از صفات بشریت و زنگار طبیعت صافی شود بعضی صفات روحانی بر دل تجلی کند و آن از غلبات انوار روحانیت بود و باشد که نور ذکر و که نور ذکر و نور طاعت بر انوار روح غلبه کند و دریای روحانیت در تموج آید و فوج موجی به ساحل دل تاختن آرد بر صفای آینه دل تجلی پدید آید و گاه بود که با نور ذکر زا که با نور ذکر ذاکر نور ذکر مذکور آمیخته شود ذوق تجلی مذکور بخشد به نان بود و گاه بود که روح به جملگی صفات در تجلی آید و این از محو کلی آثار صفات بشری بود و گاه بود که ذات روح که خلیفه حق است در تجلی آید و به خلافت دعوی حق و به خلافت حق دعوی عنال کردن گیرد و گاه بود که جمله موجودات را پیش تخت خلافت روح در سجود یابد در غلط افتد که مگر حضرت حق است قیاس در این حدیث که اذا تجلی الله لشیع خذ عله از این جنس غلط ها بسیار افتد به نفس از بحر شرب خیش آن غرور بخورد و هر روندهی فرق و تمییز نتباند کرد میان حق و باطل جز منظوران نظر عنایت که محفوظند از قید نفس و مکر حق اما فرق میان تجلی روحانی و تجلی ربانی راه گفت که نفس را از تجلی روحانیت آلتی بیگر حاصل شود از علم و معرفت در مکر و هیلت و تحصیل مقاصد هوای خیش که پیش از آن نبوده باشد و در تجلی حق جل و علا این آفت نتواند بود زیرا از لوازم تجلی حق تدکدک تور نفس است و ظهور صفات باطل او که جا الحق و ظهر الباطل او آیت شبیده اینجا اکر تجلی روحانی باشه صفات وشنی رو محبه می کنه بعد هم موقفه بعد که برگرد صفات وشنی هم برگرد تجلی ولی تجلی رو به گاهی ممکنه نفس از این تجلی روحانی استفاده بکنه و وسیرهی برای توانچان عرض کردن که نفس دائمان مشکول شیطنته این از که ممکنه در حالی که تجلی رفتانی وقتی صورت میگیره که صفات بشری محبه پردی شده میشه عمر تدکتر که طور نفس همون صحبت طور طور است و جعله و دک چند بلا ما تجل لارب عمر جبله جعله و دک پار پاره کرده و خرموسا سعیقای میگه کنور به کلی مندک میشه داغون میشه اصلا و صفات بشری بره تا حق یاد و از ذهن شانم این آیمان و قلب الباطل این این میگه فرقه و اون دوام داره تجربی روحانی دوام داره تجربی روحانی دوام دیگر آنک با حصول تجلی روحانی معنین دل پدید نیاید و از شوایهب شک و ریبت خلاص نیابد و زوغ معرفت تمام ندهد به و تجلی حق به خلاف و ضد این باشد دیگر آن از تجلی روحانی غرور پندار پدید آید و عجب و هستی بیفزاید به درد طلب نقصان پذیرد و <تصفح> خوف نیاز کم شود و از تجلی حق این جمله برخیزد و هستی به نیستی مبدل شود و درد طلب بیفضاید و تشنگی زیادت شود چنان عزیزی میگوید سوز دل خسته از وسالش ننشست و این تشنگی از آب زلالش ننشست نیرنگ وجود و نقش هستی برخواست و سر حوث عشق جمالش ننشست و اما تجلی حضرت خداوندی بر دو نوع است تجلی زاد و تجلی, تجلی, تجلی صفح بلی ارسان دنبال این انواع تجلی ها میگه باز تجلی زاد تجلی صفحات و باز انواعش رو میگه تا آخر پس و خود دوستان داد بکنند بخونم دیدیم که خیلی هم شرائرانه و زیبا نوشته این حصل و البته یک کمی ثواهد فارسی احتیاج داره اوزم میخواهد خیلی <تصفح> <تصفح> ولی خیلی خیلی قشنگ و زیبا نوشته این رو و تجلی صفات جلال, تف... جلال تجلی صفات جلال تجلی صفات جمال سایر مطالب و بعد توجیح میکنه اونجا حرف اه... چیز رو حرف حلاج رو گفت که گفت لعی جوب جب بطیسه و که میگه این در مورد فنای مطلق خودش بود جز حق چیزی رو نمیدید گفت چیزی نیست و اون که اگر صفت، صفات به اصطلاح چیز به صفت واحدی تجلی بکنید چه؟ و بعد یا اگر به صفت قائم به نفسی صفات خداوند صفت قائم بنفسی متجلی جهات آن اقضا کنند که ابویعزید میگفت سمان ما اعظم شاهی این که اینو از باویزید بسامی نمی کردن دیگه اینکه میگه که این وقتی است که صفت قائم به نفسی حق تجلی کنه در وجودش و سایر مسائل،, مسائل انواع و اقسام اینا رو میگه و فصل ادامه داره همینطور که من فعلا اینجا دیگه نمیتونم چیز بکنم فقط اینش صافی داره و شایسته این هست که چند بار آدم بخونه خود من دو سه بار خوندمش و بازم بیشتر باید خون. به هر حال این این چیز این تجلی که اینجا در شعر حافظ آمده مسئله است که سالها روش کار شد و حرف زده شد و مطلب داره و چیز داره این به همین سادگی نیست. باشه و با و نه اینا میگن که ما ما اهل حلول نیستیم حلول و اینا رو اتحاد حلول و اینا رو خیلی ترد به چیز میکنم ما میگه بنده همیشه بنده است قطره است که به دریا به پیونده یعنی نیست بشه هیچی از اون نمونه بنابراین نه اونا کاری نداره یعنی البته این مطالب مطالب ریاضی که نیستش که در بلاخره یه درویش یه حالاتی رو حس کرده، ریاضت کشته ویدی چیزایی دیده، که دیده که اکثر هم میگن خود کم که نگفتن اینا رو برای اینکه اکثر میگن که تصبف علم حال، علم قال نیست یعنی نمیشه ولی رو، چیزهایی از ذهنشون صادر میشه که اینا رو میگن بنده چون احوال رو ندیدم و اون مقامات نکردم حق ندارم در اینجا حصار عقیده بکنم که درسته یا نه ولی یه مقداری از روشنبینی و اشراف بر زمایر و این قبیل مسائل رو ما بینیم در اشخاص و این نمیتونیم به کلی نفی بکنیم در حقیقت بهتر است که وقتی یه عالمی رو یه عوالمی رو آدم تینه کرده بگی که آقا من اطلاعی از این مسائل ندارم که تو حالا میشه که آدم کرده این نیست این معنی نداره دلیل جهل آدم بسیار چیزها هست که آدم نمیتونه یعنی همه چیزها رو آدم نمیتونه جز مختصر چیز محدود خیلی خیلی اندکی که در این عمر کوتاه اگر کوتاهی نکنه میشه یه چارتکر میگه خیلی باقی مطالب همه یک دریا که آدم اصلاً نمیدونه اون استاد ما بفرمود که آقا چه خبر است در یک هندوستان چهارصد زبون مردم حرف میزن حالا من اومدم فارسی رو دید به همه کتاباشم که نخوندم خوش عشیرش هم نخوندم, هم نخوندم. دل این دل دل این, این همه دعبا و همه عرض کنم که مثل تابوز چتر زدن و به خود بالیدن و استاد استاد نداره که آقا نداره کسی نشده آدم، چیزی نشده است چیزی نمیتونه بشه، اصلا آدم چیچی هست؟ نمود بیبوده اصلا چهریان میگه گیتی به غیر از نمودی نبودیم برفتیم که از ما نماند نمود. با. راست آدمیزاد اینه و بنابراین باید یه قدری حساب کارش دستش خوش شد خب دیگه شبتون خوش رب به ارنی و لنکرانی که فرموزی من یاد یک بیت کافشی رو دادم دیگه سهر آمدم به کوی از که ببینم ات نعانی اره نینه گفته گفتی، دو هزار لنترانی ها لنترانی، وعنی مطلق و اینا باید به کار رفته ولی بلی همون که اصطلاحا قرآنیه وعنی میگن لنترانی و هم گفت کلاس؟ انشالله هست بنده میرم به آنجلس، کوشش میکنم قبل از کلاس برسم اونجا اگر هم نشود خبر میدیم دیگه ولی فکر میکنم باشه правильно стоял занялся не мог телефон на звонить когда я уstad на удал мам бешу знг данам на уstad